باز بازنگری در تاریخ قلم روبه میانی. گفتن دربار زرتوش و جایگاه زرتوش در پسین زرتوش در برخ نبواد این رو بر ما امرو بر ما مشتبه کنه حالا که دو خد از تامل گفت بعد از زرتوش گفت پس حدن ز... تامل در برخ بوده ببینید اوستا در یک زمانی تدوین شده و دائم در حال ستایش زرتوشته و کارهایی که در پیرامون او شده فریدون پسر آتبین از خاندان توانا این عنوان‌های اوستاییش در اشتا در سرزمین چهارگوش وره که قبلا هوشنگ دیف های اونجا نبود کنه، دروغگویا یعنی اونجا نبود کردن. در اون سرزمین حال مولانا میگن پیروز شده. سرنگون ای های و آزاد اون دو تا زن معروف. که تو شاهنامه اسمشون خیلی چیزش شاهنواز زرنواز. افراسیاب تورانی به تورانی تبهکار، در داسیابی به فرای فرار فرارکه، کاووس توانا، آرزوی بزرگتن شهریار شدند. کیخسرو با کبی، پهلوان سرزمین‌های ایاریایی و استوار کننده ای کشور آرزوی بزرگترین شهری ها و پیروزی بر ها و کرپ ها و به گردون هم برش اشاره میشه توز فهلوان جنگ آور بر پشت اسب تندرستی خود، اسبش، پیروزی بر هماوردانش با یک ضربه پیروزی بر پسران دلیل دودمان ویسه در گزرگاه فلان، براندازی سرزمین های تورانی کاملا داستان زمینیه و میای تو گاتا، زرت ها جمشید داره یک گناه یک انسان زمین تمام شاه های بعد که خسرو هیچ کدوم فرزندان که خسرو نیستن مستقیم یا غیر مستقیم همشون نوادگان فرواک این دلیل داره لحراس به هیچ وجه و بعدی هیچ کدوم توارشون نگدنم کنیم به که خسرو نمیرسه همه دور میزنن نوادگان فرواک میشن بانام و یاد ایگان آفریدگار و ایگان پروردگار هستی بخش با سلام و ادب خدمت همیهنان گرامی همراهان صدای امید به ویژه همراهان برنامه پژوهشی ایران ویج. به مبارکی و میمنت رسیدیم به قسمت چهلوم این برنامه و امیدواریم تا قسمت صدوم هم برسیم و نکته به نکته مباحث پژوهشی که دوستان پجوهش کردن برنامه آماده کردن به سن نظر شما شنوندگان گرامی برسونیم ما قول داده بودیم که در این قسمت این یعنی قسمت چهلون و حتی چهلو یکم به بحث فلسفه تاریخ بپردازیم ولی چون که مباحث مربوط به کیومرس و همچنین اون شبهاتی که باقی مونده در رابطه با بحث زمان مکان اینکه انسان بودن اولین انسان بودن اولین پادشاه بودن نه انسان بودن یا نه در واقع نماد دوره بودن که هنوز شبهاتی باقی مونده ما اون رو فعلا ادامه میدیم و امیدواریم که در قسمتهای بعدی چهل و دوم به بعد بتونیم بحث فلسف تاریخ رو پیش بکشیم تا چاشوه نظری برنامه رو روشنتر تر بکنیم چرا واغا ایران مهری گرامی بیشترین در واقع پاسخ به اون شبهات در مورد کیومرس رو شما به عهده گرفتید و در های گذاشتم نتیجه متجری های خودتون رو فرمودید در این قسمت هم تر بحث بفرمایید تا امیدواریم به قسمت‌های بعدی بحث برسیم ممنونم درود بر شنوندگان عزیز دال درباره این مسئله کیومرس خب حالا یه شبههایی مطرح شده که الان شاد وقتش باشه که به اونها اشاره کنیم یکی از مسائلی که مطرح میشه در حقیقی بودن این نام ها که اینا افراد حقیقی بودن یه مثالی زده میشه که مثلا آقا تو اوستا اینا ردیف پشت سره هم آمدن یعنی کیومرس و مثلا هوشنگ و تعملیس رو جمسید اینا ردیفن چون ردیفن بنابراین پدر پسرن و پس حقیقیه ببینید در این که ردیفن خب این درست باید هم ردیف باشن تو همه اسناد با همین سبک پشت همن چون اصلا فلسفهش همینه ببینید یک مثال میزنم من میگم که آقا صبح خورشید طولو میکنه شبام غروب میکنه بنابر این دو به علاوه دو میشه پنج خب شما قبول میکنید دلیل هم درسته من بحث او... یه مبحثی رو دلیل دو به علاوه دو میگه من میگم دو به علاوه دو میشه پنج شما میگین چرا میگم چون صبح شو... صبح خورشید میکنه شبان غروب میکنه اون بلده. درسته در واقع مقدمه و صغرا کبرش درسته ولی نتیجهش درست نیست اینا که پشت اتفاقا پشت سر هم بودنشون چون کردارهاشون با پشت سر هم باشه شما بیان ایرج رو بذارین پیش از تمور است مثلا جور در میاد هوشنگ بیاریم بذاریم پس از گشتاست اصلا همه چی به هم می ریزه تمام تفاصیری که پی، پیرامون رامون و ایناست به هم میرিজে یعنی اگه هوشنگو بذاریم پس از گشتاسب یعنی تا زمان گشتاسب میاد هنوز آتش رو به بار هار نکرده یعنی دلیل این دوستانی که میگن نا حقیقی هستن فقط همین همینه, همینه که پشت هم یه هستن یکی از چیزایی که که اینا چون ردیفن پشت سر پس هم... کی اصلا دقیقا یه, یه دلیلشه یکی دلیلش پس یکی از دلایلی که دائم عنوان میشه چون اصلا این چونه هیچ بی معناس بله بعد خدمتون بگم یک مسئله دیگه اینی که دائم مطرح شد اینی که ما الهه هامون رو از دست دادیم بعد ناچار برداشتیم این شاه رو الهه و ایزت کردیم گذاشتیم جای اونا کی گفته کیومرس الهه هست الان تو فرنگ ما کی گفته الهه رو از دست دادیم من اینا رو متوجه نمیشم من الان فقط یک از ده الههامون هامون همینجور همی سرنگشتی براتون میخونم ببینیم ما چجوری نرد دست دادیم زوروان اون ششتا امشاسپندان رشن بهرام تیشتر آپوش درواسپه،, درواسپه درواسپه توانا مهر فراخ چراگاه سروش نریوسنگ همه فروشی ها اندروای زبردست اشی ایننه ایشتر اپام نپاد همشون هستن همشون دارن کردارای خاص خودشون انجام میدن کیومرث هم که اون تعریفی که ما ازش داریم میکنیم اصلا به امشاسپندان نمیخوره هیچ رابطه به اینا نداره کیومرز ما دریم در میگیم این انسانه اینا آمشاز پندانن جافدانن کیومرز یه مرت است مثل از شمشاز پندان آفریده شده اما میره میراست, میراست. میراست. اصلا هیچ رابطه به ایزادان نداره تعریفی که ما از پوشانیم میکنیم هیچ رابطه به ایزادان نداره شما کمترین نسبتی رو نمیتونید میان جمشید و بهرام به هم بدین بهرام یک ایزده جمشید داریم یک دوره زندگی انسانی رو ازش پاس میکنیم. بنابراین اینا ربطی به هم نداره. بعدش هم اینا طبق یک روند اینا چیز شدن، آفریده شدن. ببینید مثلا شاهنامه وقتی اون بخش آفرینشون میگه میگه میان آب و باد از بر تیر خاک. یکی آتشی بر شده، تابناک. ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. نخستین که آتش به جنبش دمید. بعد ادامه میده میگه ز سردی همان باز تعریف و زود و از آن پس آرام سردی نمود شگفتی نماینده نو به نو پدید آمد این گنبت تیز رو به جنبی چون کار پیوسته شد حالا من میام جلوتر فلک ها یک اندر دگر بسته شد ببینید روند آفرینشو داره میگه دیگه گنبد پید آمد بعد فلک ها به هم پیوستن زمین شد به کردار روشن چراغ چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ. سر رستنی سوی بالا کشید. یعنی بعد زمین پدید آمد حالا رستنی آمده گیاهان به بالید کوه آبها بردمید بعد کوها خشکی یعنی خشکیات دیگرد دل آبها بر اومدن بارد. یکی مرکزی تیره بود و سیاه زمین را بلندی نبود جایگاه یعنی هنوز کوها از تو دل خشکی ها در نمید بودن به خاک انتر... اندرون روشنایی فزود ستاره برو برشگفتی نمود بعد دنبالش میاره که به زیر اندر آمد سران بخت گیا رست با چنگونه درخت همه بعد بقیش میگه همه رستنی زیر خیش آورید و از آن پس چه جنبنده آمد پدید بعد جان میاد دارد تکامل خاک و ز زخ... خاشاک تن پرورد نه گویا زبان و نه جویا یعنی اینجا هنوز نطخ و کلام پدید نامده بعد دنبال میکنه دیگه پس ببینید هنوز بعد اینها که حالا آسمان و زمین و کوه و فلان و اینا رستنی بعد جانور تازه بعد ایناست که حیوان ناطق همون که نسوی گفت بعد گعه و میاد این اولین انسان نیست به هیچ وجه یعنی شاهنامه و فردوسی هم کیومرث رو اولین انسان نمیدونه نقدا حالا اینجا ما میتونیم بگیم ببینید نخستین انسان که تقریبا او چون که من میبینم چرا دیگه ببینید تا اینجا تن پرورید جانور آفرید جانور هنوز ناطق نیست بعد ناطق میشه تازه بعد ایناست که کیومرس پدید میاد ببینید ما اینجا هنوز تو تمام مراحل امشاسپندان آفریده شدن ای زدان ها رو داریم اما کیومرثو نداری. نداریم, نداریم آسمان پدید میاد، زمین پدید میاد، رستنی، کوه ها پدید میان. بعد رستنی، بعد جنبنده، بعد جنبنده ناطق، بعد حالا دیگه میرسیم به گایامراتا. گیمارت. گایامراتا <تصفح> که این دیگه نماد انسانه. پس ما همینجوری نمیتونیم رو پرد کنیم توی زیاده. بگیم بله ما چون حالا دل میخواد کیومرث کجاش زیاده. بعد همه اینا ببینید آه اینا همشون ردیفشون به هم بزنی همه چی به هم میریزه نمیشه به همش بزنی. اگه دلت بخواد همچون که گفتم مثلا هوشنگو بیاری بعد گشتاس همه چی به هم می ریزه کیومرث رو بگی ایزاد کیو. نمیشه کیو اصلا ایزد باشه. با این ردیف آفرینش رو ما تو چیزم خوندیم دیگه. توی عوستام خوندیم اونجا که درباره می می‌گفتیم اگه اینجا دم دستم باشه براتون بخونم. دیدین که اونجا هم آفرینش رو همین ترتیب به فقط یه لحظه اجازه بدید این نوشته رو بیارم چون حیف. اوستا دقیقا همین رو داره میگه. فروردین یشت ببینید اونجا هم تو بند 80 فروردین یشت وقتی میستایه فروشی رشن رو میستایه بد مهر بد منسره ورزاوند بد آسمان آب زمین گیاه گاو یعنی جانور بد گیه کیومس بعد دو جهان اشو ببینید ترتیب رو ترتیبش با شاهنامه مونه میزنه اصلا ترتیبش با یه چیزی هم که علم امروز میگه مونه میزنه همه میدونن که ترتیب بعد توی اون داستان گایا هم دیدیم ترتیب آفرینش باز همینه بله همین ترتیب اول خلعه بعد خا... خاوس خلعه بعد گایا بعد یعنی روان آفرینش بعد اورانوس آسمان بعد پونتوس دریا میبینیم باز ردیف دقیقا همینه یعنی ما موقعی که میخوایم اینا رو چیز کنیم ببینید اینا قوانینی داره. نمی به همش بزنیم بگی مردم ایزاداشون از بین بردن بعد اومدن رو ایزاد کردن کو کجاش ایزاده تو شما از هر ردیفی که نگاه کنین این بعد از جنبندگان و بعد جنبنده‌ی ناطق بعد گومراته مرتب وجود میاد بعد خدمتتون بگم که یه مسائله دیگه که حلوان میشه که اینه که آقا علاوه که ما گفتیم حالا بعدا هم خواهیم گفت که شا... مثلا به شاهنامه اشاره شد که سند متأخر اسلامی و و علمی نیست و بعد بلا فاصله در تأییدی که مثلا اینا حقیقا خب مثلا از مسعودی خونده میشه. ببینید هیچ از این اسناد بد نیستن. یعنی من هم شاهنامه رو دوست دارم هم سند مسعودی رو دوست دارم. چون از هر کدومش ما یه چیزی یاد میگیدیم. من تا یه روندیه که حالا تو نشست آینده من توضیح میدم که اینا چطوری حقیقی شدن تو ذهن ماها. یعنی هم همین روند و پیمود. اهریمن اصلا یه چیز دیگه بود، سرما بود، درشو آپاختر بود، بعد تو دوره متأخر ساسانی و بعد اسلامی، بعد شد یه چیزی که اومد کار بد میکرد و دروج بود و گول میزد و یه چیز یعنی کاملا زمینی شد. اهریمن در اندیشه ما اصلا یه چیز فرق کرد. مینو خداد بخونی اصلا یه چیز دیگه شده. مسعودی در حالا بعد بعد توضیح میدم در کتاب مروج و ذهب و المعادن الجوهر که به معنای مروج در عربی یعنی مرغزار، ذهب یعنی زر یعنی مرغزارهای زر و کانهای گوهر مروج و زهب و معادل الجوهر یه مطالبی گفته منته ما متهم میشیم که ما داریم سند متأخر اسلامی میخونیم اما این که کیومرث حقیقی از سند قرن ششم داریم ما خونده میشه که چون مسعودی گفته پس ما باید قبول کنیم و میگن که مثل مذهبی ها یک یافته جدیدی رو میریم پیدا میکنیم میچسبونیم به کتاب دینیمون خب در صورتی که مثلا خب فیروزی تو کتاب کی گشتاس بشون با سند نوین ستاره شناسی نظریه زمان زرتشت و گشتاس اثبات کردن بسیار کار خوبی کردن به نظر من اما وقتی که ما میگیم که اسناد انسان شناسی نشیمن انسان در زاگرس رو نشون میدن میگن نه دیگه یافته جدید پیدا شد شما نباید ربطش بدیم به شاهراه مثلا یا به اساتید ما یا مثلا اون ژنتیک خانم کارافت رو میگن متطابق میگنم با فرگه یکون وندی داد به نظر من حالا اگه جور در بیاد اشکالی نداره بالاخره یه یافته جدیده با اسناد کهن داره مطابقت داده میشه پس این ایرادها به اینی که ما اسناد انسان شناسی رو حالا فعلا ربط دادیم به رو خوندیم مطابقت دادیم به شاهنامه و فروردین یشت و اینا پس این نقض دیگه من داشتم گلایه هایی که من داشتم تو نشات 33 میگفتم میگفتم خودمون کار نکنیم بعد طرف همین کارو همون کار مشابه کرد ایراد بگیریم بله طابقت دانش های نوین با اسنادمون یه کاری که ما باید انجام بدیم گذشتهگان انجام ندادن کوتاهی کردن بله. کوتاهی کوتای خیلی مسیکم ج باقای فیروزی ما صحبت شما رو میشیم البته من یه, یه دقیقه فرصت میخوام در مورد مسعودی صاحب مورد اوجا ذح از کنم که یک اندیشمند و مورخ شیعه قرن چهارم بوده و البته حتی در میان علمای شیعه هم یه صحبتهایی در موردش هست مثلا در مورد بحث برنامه در مورد تاریخ ایران هستم تاریخ اسلامی یک بحثی داره که میگه بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام یاران حضرت علی جمع میشن و ازش میخواین که اجازه بدن با امام حسن یعنی پسر بزرگ حضرت علی بیعت بشه اونجا حضرت علی یه جمعه میگه میگه که پیامبر برای خودش جانشین تعیین نکرد و من هم برای خودم جانشین تعیین نمیکنم. حتی اینجا هم در واقع علمای شیه معتقدن که او دوچار اشتباه شد در حالی که پیامبر بعد از خودش جانشین تعیین کرده بود و هزه علی رو جانشین خودش تعیین کرده بود حتی در مورد باز هم مسعودی اگر صحبت بشه اگر به اون رو مثلا بشه باز هم از این نوع اشتباهاتی که مسعودی دوچار شده رو بنده عرض کرد. باقی باخ فیروزی مشتاقم سخنان شما را سباز سپاسگزارم من خیلی خوشحالم که شما دکتر یه نکته خیلی جالب رو وسط گفتیم وسط فرمایش شورای ایران مهر و اون این بود که در خود حتی شاهنامه فردوسی ما پیش از آغاز پادشاهی کیومرث به آفرینش انسان اشاره میشه و میبینیمش بید به این صورت هستش سرش راست بر شد شو سر به بلند به گفتار خوب و خرد کاربند این یعنی قبل از آغاز نخست پادشین نخستین پادشاه انسان هایی بودستان داره به پیدایش انسان خوسینشون اشاره اشاره میکنه, میکنه و چرا ببینید تاریخ شاه... کتاب شاهنامه وارث منابع تاریخ درباری ساسانی این مشخص هست از نوع چیزش و این با مطالبی که مثلا امسال مسعودی اینا دارن متفاوته در شاهنامه پادشاه پشت پادشاه میاد دو سالی کیقوبات که استثناست که میرن می شور میکنن و میارنش ولی مسعودی حتی رو می اولیه میگه که مردم شور گرفتن و این انتخاب کنن که من جمعهش خوندم آن امروز یه دیگه هم میخونن مانه. و در تاریخ کمتر درباری مسعودی واقعا مفاهیم متقابل می‌بینیم با, مفا... با شاهنشاهی‌ها حالا این صحبت است آیا مسعودی به, نت... به اسنادی دست یافته بود که مثلا فردوسی اصلاً ندیده بود اینجا... همه اینا ببینید اسناد اسلامی کلیتشون سه دسته کلی تقسیم میشن یکی اسنادی هستند که هم پیشدادی کیانیان رو می‌شناسن هم هخامنشیان رو می‌شناسن مثل آثار الباقیه بیرونی بل یه سری هستن که فقط پیشدری کیانیان رو می‌شناسن مثل خیلی از اسناد اسلامی یه گروه اندکی هستن که فقط حقامنشیان رو میشنسن. مثل اصدار ابن ابری با. مختصر تاریخ و دول یعنی این سه دستار این فردوسی جز اونهایی بوده که پیشتاری کیانیانی رو میشناخته که انتاش به حمله اسکندر بسنمش قرمز همه اصنات از یک نفر باشه همه ابوریحان همه بیرونی نمیشن این در نظر بگیریم خب این یه نکته که پس ما قبل از کیو پادشاهی کیو مستش شاهنامه ما آفرینش این خود سین انسان نداریم حالا به حال داریم نداریم دیگه دا ببینید سر رستانید سوی بالا کشید به بالید کوه آبها بردمید بعدش هم میاد جلو میگه که تنی آفریده که نه گویا زبان بود و نه جویا حالا من تو قسمت آینده شما اینو پاسخوانی که از انسان نبود اصلا این ده. اول نیز مشکل نداره. من خودم, برد. برد. من خودم حالی بینشوره خواهم که اصلاً آماده میامی صحبت میکنیم این از این بعد ببینید ما در یشت ها نیایش ما هاست. انسان ها و سرایندگان به درگاه ایزدان اینا مونده داستان های خدایان ما از بین رفته شجر نامه خدایان ما اون چیزی در سنت ما نوی میبینید از بین رفته نسبه به کیش های ما اینا از بین بردن به هر علتی ما این داستان همون از می رفته این پسر کی بود اون دختر کی بود اون با اون چه رابطی ای داشت اون چه کرد دیکید به اون این هم از می رفته ما دیگران هست ولی برای پادشهان کوهنمون تاریخ ناشناخت مونده. این اومدن مقالمه است با داستان های خدایان. این اتفاق افتاده مسئله بعدی ببینید میان خودشون میگن که کیومرس خدا نیست، الهه نیست، فلا نیست و بعد می داستانی کیومنس و آقای با گایا مقایسه میکنه من این نمیفهمم بازی موازی کاریه با گایا چطور میانی نخ... شصر انسانی مقایسه میکنه این با حرف خودون تضاد داره مسئله بعدی ببینید بله میان دانش های روز رو مثل ستاره شناسی رو مورد استفاده قرار میدن برای اثبات یا ردی یک گزارش کوهن. این خیلی فرق داره با اون قضیه‌ای که شما می‌بینید که مثلا یک چیزی بدون هدف مشخص این هدف م... اصلا درباره آزمایشون کتاب باشه برن کشف کنن بعد بدو بدو برن کتاب‌هاشون ورق بزنن بگن این چیزی که شما کشف کردید تو کتاب ما بوده این دو موضوع متفاوت یعنی شما یک بار که من می‌خوام در این متن نوشته شده که استکان وجود دارد من آزمایش می‌کنم که استکان وجود داشته یا نداشت این یه حالته، یه حالت اینه که میان استکان پیدا می‌کنن، آزمایش میکنن بعد میان تو موتورجوبالون استکان میگردن این حالت دومیه که حاله مثبی باورمن به کتاب مقدس همه چیز کامل می‌ران انجام میدن و این شاهنامه محوریمون رفته به این سمت. مسئله بعدی، مسعودی در کتاب مروریج میخواسته به بپردازه ولی در مروریج ذهب نپرداخته میر نوشته که من در جزء هفتم کتاب مروریج ذهب می‌خوام بیام بهتون بگم چرا ایرانیان سالهای سلطنت شاهان پیشتری کیانیان را می ولی ننوشته بین یعنی بردنش ما نمیدونیم چرا این چیزیست که بیرونی گیج میزد؟ مونده بود که چرا این سالها اصلا بیرونی عصبی کرده بود یعنی بیرونی بیرونی با این که عصبی شده بود در جدول آخر میاد سالهای واقعی رو گزارش میده میگه اینم من بذارم پنج جدول میاره سال افسانه‌ای یه جدولش رو میذاره بعد مری داستان‌هاشون غیر قابل باوره یا مثلا حمزه اصفهانی و به شدت عصبانی قرار قضیه خب ولی مسعودی میاد اینو میگه که وعده میده من در اون فصل می‌ذارم ولی فصل ولی میاد تو کتاب التنبیغ الاشرافش یه توضیح مختصر میده که اردشیر بابکان چه بلایی سر اسناد میاره چرا حذف میکنه چرا اضافه میکنه و این دستکاری‌ها کجا رخ داده یعنی اگر این سال‌ها طبیعی میموندن در این شخصیت ها دیگه دوشار این ادبیات چی بازی ها ما نمیشودیم از اونجایی که در این مملکت طبع ادبی همه ای ما بالاست همه ای ما تنها بشیم به جایی برای خود این شعری میگیم همه ای ما ایرانیان عین یونانی‌ها طبعاً شعر رو دوست داریم و دوست داریم از هر چیزی یه اساره یه آرای ادبی یه کنایی چی ها می ما پیدا کنیم دنبال این کار خوشمون میاد می دوننیه بر... شاعری ریاضی هم دوست داشتم ما مثل که فقط ریا... شاعری دوست داشتیم و چون در این هزار سال اخیر ایران شاعران ما بیشتر از مورخان ما بودن اینست کفه سنگینی بررسی و نگاه ما به کتب کلاسیک و کهنمون ادبی شد تا تاریخی واسه همین عادت کردیم که فکر کن هر چیزی نماد یک مسئله است و این تا الان یقین ما رو نکرد دیگران ازش سال‌ها گذشتهن که بارها گفتم ببینید میگن که میخوام این اشتباهات رو بگم میگن که سن در زاگروس انسان پیدا شد بله در نوسنگی که همه جا انسان بوده چیزش عجیبی نیست که ده از ده هزار همه دنیا انسان بود. ولی اون چیزی که در ذهن مثلا باب ایران مر این انسان نئاندرتال رو ایشون بگن که مثلا میگن در شاهنامه بوده دو تا داستان مز... جدا اصلا هستن شاهنامه سا ها این فرمول انشانه ساپینس ها بین 4 تا سال چه... خب این که من همه میدونن این چند تا این که غار هم... در میدیدن این جسدا داره خیلی خوب بودن جمعیت های کوهن رو انسان درک میکرد اصلا کتاب داره کتاب, کتاب یکیش میاد بحث نامه باشه این چیزی نیست که بخوایم با چیز مسئله اثبات کنه این میشه به اضافه ای دو میشه 5 در یک کلمه ما داستان خدایان اون رو داریم آقا این از دست دادنشون باعث شده ببین بدبختی بیافتیم که از پادشاهان و كهنمو همه این متون كهن و فرنگي كن پادشاهان كهن دارن پشتشان خدایان دارن ترتیب چینی‌ها رو ببینید خدایان انسان اول سه امپراتور پنج فرمان روا بعد نخصین دودما مصری هم همینان چند ده تا خودان هشت تو خودان بعد نخستین فرعون میدونید اینا همه حل شده همه جا ما چون داستان ها دست دادیم داستان اشقه هاشقی بهرام و آنایتا و این داستان ها رو یا این پسر کی بود دختر کی بود رو به این ورطب بیچارگی برای باستان شناسی ایران و دیدن به صرف یک ادبیات چی بله خیلی متشکرم وقتی این برنامه این قسمت رو به پایان هستش در قسمت آینده ما این بحث رو ادامه خواهیم داد خصوصا مسائل جدی که جناب آقای فیروزی مطرح کردن این که واقعا داستان خدایان ما از بین رفته یعنی واقعا چنین چیزی اصلا هستش اصلا تالا کسی پرداخته به این که ما مثل مثلا اصوله های مصری و چینی خدایانمون به اون شکل و پشت سر هم نیستن و آیه اصلا لزوما باید باشن به این شکل باشن یا نه در این مورد ما قسمت آینده بحث خواهیم کرد شما شهرنگان گرامی رو تا آغاز قسمت چلیه و به خدایه متعال می رو نگه داریم